بسم الله الرحمن الرحیم الا ان لله من انف السماوات و ما الارض و ما ی تاب آل لزین یاد اونم اندون الله شرکاء، این یا تاب اونه ال لزنه و اینهم ال لا یخورسون. علاه حرف تنبیه برای توجه مخاطب نسبت به کلام بعد و تأکید اونه. علاق. حرف استفتا حرف تنبید حرف تأکید ان نه هم همینطور پس این مطلب مطلب اساسیگیست که گوش کنید ای نه لله من فی السماوات و من فی لعرز من برا زویل اغول به کار بیره. که ملائکه جن و انسه درست شد میگه که ان لله لله خبر مقدم من اسم مؤخر ان جای اسم و خبر عوض شده من باب حسر یعنی تمام زی شعوران عالم زی شعوران عالم ملائکه جن انس همه اینها ازان خدا یعنی اینها خودشون مخلوق خدا در قبضه خدا پس اگر اینها که جنس برترند در قبضه خدا هستند پس این بقیه اون چیزهایی رو که شما به عنوان بود حساب میکنید بگید مرخص هم این زیشعوران آلم همه مخلوق خدان چون بحث بحث با مشرکین است وقتی داره میگه من فل و ما من فل عرض این فل عرض و فسماوات، آسمان ها و کرات یعنی کل هستی من رو هم تکرار کرده نفرموده من فل و ول یعنی اون روش بگو. یعنی آنچه در آسمان ها هست ملائکه و آنچه در بگی زمین ها هست کراد هرچه هست خب نه چیز دیگه ممکن ممکنه باشه هر چیزی ولی من گفته زیشور جن نممکن نم باشه از زیشور یعنی این منفع سماوات و منفع عرض ملائکه هستند و جن هست و انس یعنی طبقه سریح آیه یه الهی آیات الهی اینه اینها میگه همشون زیر بلیت خدا در قبضه الهی فقط به هیچ کسی دیگه هم نه فقط خدا خب پس بنابراین بقیه دیگه چی وقتی اینها عبید خدان در قبضه خدان و هیچ کدوم اینها دیگه صلاحیت برای علوهیت بگید ندارن پس بنامراین مالای عقل دیگه اصلا بگو هیچ من. مالا یعقل اصلا بگو قابلیت ذکر ندارند این تا اینجا و ما الذین یدعون من دون الله این ما سه تا ترکیب توش میتونه باشه این ما سه تا ترکیب توش میتونه باشه یکیش ما مای نافیه باشه. درست شو؟ اون موقع اگه ما نافیه باشه معناش چی میشه؟ و ما یتبع الّذین یَدعُونَ من دون الله شرکا این یادونه و یتباوسر شورکا نزا کردند. درست شد نه؟ یعنی و ما یتباو اللذین یادونه من یادونه من دون الله شورکا یعنی آن چرا که الذین یدعون فیل مزاره الذین یدعون شرکا یعنی یدعون هم یعنی عملو داده به دومی که برای اولی ها دیگه این ما یعنی عمل دادیم به اولی به اولی دادیم دومی زمیر آید میخواسته درست شد؟ زمیر آید یعنی ید هم یعنی وما یتبه و شرکا اللذین ید اونه مندون الله یعنی اللذین ید اونه هم مندون الله اونایی رو که اینا میخانند شریک مندون الله در حالی که غیر خدا هم هست این مندون الله میشه حالا برای اون ندت این که ما نافیه باشه باش. بله البته یعنی چون ما فاعل آید متصل نمی منصوب باشه جایز هست میشه چی ما یطب و شرکا رو بیاریم جلو ما یطب و شرکا یدعون نبون بگید من دون الله این هم هم بردگرده بردگرده برد. یعنی یدعون هم شرکا هست دیگه میشه دید ها یعنی سمون هم. این شرکا مفروض این یتبعا. با الذین بگید نزاع نزا کردن او ما اومدین گتبه او یدون هم شرکا ترجمه چی میشه؟ ترجمه تبعیت نمی کنن شرکا رو کسانی که می خوانن بودها رو شرکا در غالی که اونا من دون یا اصلا همتا یه دوگونه یه هم حتی دگیرید بلی نمی کنه می شه نمی کنن شرک ها را کسانی که میخوانند، خوانن درست شد بدون الله اون بودخاشون یعنی کسانی که چیزهایی رو دارن می اونها حقیقتاً حقیقتا شرک ها را بگید تبعیت نمی کنن یه چیزهایی رو اینا شرک ها میدونید که اونها ها میگفتن اینا شریکان ما پیش خدا هستن نمیگفتن اینا خدای مستقل میگه اینایی ای رو که اینا شرکا میخونن در حالی که مندون الله هم اینها حقیقتا تبعیت شرکا نمیکنن خب یعنی چه تبعیت میکنن؟ اینا تبعیت میکنن یا نمیکنن خلاصه؟ اینا عبادت شرکا میکردن کردن یعنی میکردن؟ میکردن پس اینجا باید یه مزاف درست کنیم یه مضاف در بگیم. بشه. ما یک طبعه حقیقت شرکا حقیقت شرکا شرق. اینا شرکا رو به طور حقیقی حقیقت شرکا رو طبعیت بگیر نمیکنن. یعنی اینا واقع شریک نبودن که اینا طبعیت شدن اسم شریف روش آه مشخص شده نه این هیه الله از ما هم سمه و؟ آبا بکن اگر اینا شریک واقعی بودن اینا تبعیت میکردن باید میگفتیم مایه تبعیت و شرکا اینا شرکا رو تبعیت نمیکنن بلکه یه چیزایی رو که خودشون اسمشو گذاشتن شرکا اونا رو دارن تبعیت میکنن گرفتید ما شد مایه چی نافیه میگه تمام یعنی اون جمله اول میگه تمام آن چه که در آسمان و زمین است اوغلاش مال خداست غیر دیگه از زیرا این ها. زیرا اینها بنابراین اینها تبعیت نمیکنند شرک ها رو چون همه مال و هم. پس بنابراین اینها شرک ها و بگید نمیکنند اینا چه شریکی رو تبعیت میکنند اصلا شراکتی نیست همه مال خداست درست شد پس اینها اونها رو یددو اون همون هم شرک ها شرک ها بگید. میخونند و الا اینا واقعاً شرکا نیستند و ما یتبع الّذین یَدعُونَ الّذین استاد و ما یتبع الّذین یَدعُونَ من دون الله شرکا درست شد؟ پس شد ما یتبع اون حقیقت شرکا من هم الله یاد که گفت تنها جایی که میتونه هست، حذفش همینجاست تنها جایی که میتونه ذلغال حذف بشه بگید همینجاست جایی که ده بگید سله باشه خب بعد نگاه کنید دنباله رو دنباله رو ان یتبمون الاذن خب اینا اگه حقیقت شرکا رو تبعیت نمی‌کنن اگه شرکا رو تبعیت نمونن و چی رو تبعیت می‌کنن میگم میگم حالا یه ترکیب رو تموم کنیم ترکیب اول رو این یدتبه اون استیناف بیانیه خب اینا اگه حقیقت شرکار خب؟ رو تبعیت نمی خب پس چی رو تباییت میکنن سواله دیگه نه میگه این یدتبه اونه الا زن یعنی زن نه هم اینا دنبال گمان خودشون با حلوا حلوا که دهن بگید شیرین نمیشه اینا گمانشون این اینا شرکان گمان خودشون رو تباییت میکنن نه حقیقت رو گرفتی پیوند آیه رو یا نه؟ جمله اول گفت چی؟ گفت هیچی در کنار خدا نیست همه چی مال خداست خب جمله دوم گفت پس اینا اگر شریکی برای خدا قایلن تبعیت شریک نمیکنن. حقیقت شریکی وجود نداره جمله سوم میگه چی؟ زیرا اینا دنبال گمان خودشون ها. اینا تو گمانشون یکی رو کردن بگو شریک دارن تبعیت میکنن اینا شریک تبعیت نمیکنن گمانشون رو تبعیت میکنن در جای دیگر قرآن هم داشتیم ان هییه الا اسمان تو سوره یوسف سمعیت و موها انتو و ابا و اینا شما اسم خدا گوزشتید روش با اسم گذاری شما که اینا خدا بگید نمیشه با شریک گفتن شما اینها رو اینها شریک بگید نمیشه ان یتب اونو فهمیدید چقدر ارتباط پیدا کرد ان یتب اونو و ان هم الا یخرسون و این هم و اینها نیستن مگر یخرسون تازه زن گوش کنید زن گمانه یعنی یه با قول از شک بالاتره یه منشه های ممکنه نه اینا این هم الا یخرسون اینا فقط حدس میزنن فال میگیرن یعنی همینطوری گفتن یعنی از حتی گمان هم بگید پایینتره انهم هم الا یک یعنی تقدیر باطل میکنه این اصلا آخه یه موقع از گمان میکنید منشه گمانت میتونه یه چیز عقلانی باشه درست شده نه؟ منشه گمان یه چیزه بگو عقلانیه مثلا یه نفری شیش روز میاد تو این دانشگاه یک روز توی دانشگاه دیگه است پنی روز میاد اینجا دو روز یه جای دیگه است شما گمان میکنید زن که امروز این این گمان یه منشهی بگید صحیحی میتونه داشته باشه یه منشهی صحیح اما یه نبری هست اصلا کارش به دانشگاه نیست رابطه هم به دانشگاه نداره شما حبس میزنید تو دانشگاه باشه این میشه این هم الا یه اخلوسون اصلا منشهی ندارد متوجه نه اینا نه قدرت دارن نه خالقیت دارن نه چیزی دارم فقط اس بذاشتید روش پس من حدسه فقط اونم حدس باطل تا اینجاش معلوم شد اینجا یدونه هم شرکا باید بردم یو هم چون دعا دو مفعولی باشه معنی معناه این مال مورد اول درود شو ممکنه که ما مایت تبعه رو ما شمایه استفهامیه بگیریم خب اگر ما استفهامیه گرفتیم دیگه این شرک رو میخواد بگیریم میشه؟ اید شیعن یت تبعه لذینه یا او ناهم شرکا مندون الله اپ یعنی چه چیزی اینا ها ما گفتیم همه چی ماله خداست استفهام اینم چی میشه معناش استفهام در معنای نفیه جمله اول میگه همه چی مال خداست میگه پس بنابراین چی چی را اینا دارن بال می‌کنن تبعید می‌کنن نگرفتید چی شد و عایش اینم بنابراین این چه چیزی رو اینا دارن دنبال میکنن؟ چه چیزی رو تبعیت میکنن اللذین یدعونه؟ آه یعنی چی رو دنبال میکنن؟ یعنی عیشه یدتبه اون بنابراین این ترکیب بگیر شرکا منصوب است به یدعون و بنابر صورت اول منصوب است به بگو یدتبه شد نشد یا شد؟, یه شد؟ تا اینجاست. آیا میشه ما رو مای موصوله گرفت؟ نگاه کنید ببین میشه؟ یعنی ما رو مایه موصوله بگیریم، اطب کنیم به جای من. بشه اینطوری: علی اِنَّ لِلَّهِ الله فِي سَمَابَات وَمَنْ فِي لَرْز ترجمه رو ببینید آهای مردم هر چه در آسمان ها و زمین هاست از اغلا مال خداست و آن چه تبعیت میکنن کسانی که میخوانند اونها را شرکا یعنی بودهاشون بود. اون مال خداست میشه وابا و آتفه و ماعت میشه به جای من یعنی اوغلا حالا اینا که یه سری چوب و تخته دارن به قول معروف توید میکنن خب ها اینها مال خداست تازه اون بگو اوغلا و ملائکه و جن و انس هم بگید مال خداست اونها مال خدا، درست شو ما ما بشه و عطف بشه به جای من یعنی لله ما یتبع او هو عاید اون موقع چی شده بگید حذف شده عاید سله خوب بوده ما یتبع او الذين یدعون من دون الله شرکا یعنی و له شرکاو هم یعنی لله الملائکه و الانس و الجن و الاصنام یا وحشت چی شدیا نه؟ لله الملاهای که تو، و و الانسو، و همه مال خداست. خب، اینو میتونه ترتیب بعدی باشه ولی خب کدومش؟ من سه تا رو گفتم به ترتیب. نه. اولی از همچون. اولی بهتر از دومیه، دومی بهتر از. سیاه آیات رو اون اینیت تبعونه اینیت تبعونه الازن این با اون وامایت اونا میسازه که ما نافیه باشه و استفامیه یعنی اینا دنبال چی هستن پس میگهیم خب اینا میگن شریک داریم میگه اینا دنبال گمان های خودشون هم ها؟ یه دروغ گفتن دروغ خودشون هم بگو ایمان آوردن باور کردن تو صورت اول یه مضاف هست شده حقیقت و شرک یعنی این واقعاً واقعا دنبال شریک توییت از شریک نمیکنه. اون قسمتی که میگه ملایکه و جن و انس مال خدا خودش به دلالت عقلی دلالت میکنه پاید چوب و تخته دیگه به طریق اولا قول اول بهتر از قول دومه چون پیوند جملات رو بهتر میکنه قول دوم تقریبا مشابه با قول اوله استفهام در معنای نفیه بگید همون معنا رو میده قول سوم جمله رو دراز میکنه که ان لله من فالسماوات و... در صورت که اگر ها ان لله ما فالسماوات و ما فلارض میگم همه رو بگید شون. قول اول بهتر از دوم دوم بهتر است خب ببینم انهم الا یخرسون آیات رو رو ببینید چون ان یتبعون الا زن و اینهم الله الا یخروسون هم یعنی اینها ها این هم الا یخروسون لا یزنون لا یتقییت یقنون اینا نه گمان میکنن نه یقین دارن فقط بگید یه چیزی همینطوری حدث میزن هم که بیمورد خب حواللزی حواللزی حالا میخواد نعمت خودش رو به رخ خدا هو جعل لكم اللیل بابا این خدا خداست اونی که جعل الکوم اللیل لاکوم مفعول دوم جعل اللیل مفعول اول این شب‌ها رو می‌بینید همین شبی که میبینیدش اینو برای شما قرار داده حالا اگه جعل به منه قرار دادن باشه لکوم میشه مفعوله دهمون متعلق به ای صابتتن. میشه مفعوله اول. اگر جعله به مانه خلقه باشه. لکن متعلقه به جعله میشه. اللیله میشه مفعوله به. یعنی خدایی که برای شما به خاطر شما آفریده. شب رو. شب دارید شما. نگرفتید؟ جعل به معنای دو مفعولی بهتره. یعنی خدا در حکمت خودش چنین قرار داده چون وقتی میگه چنین قرار داده پس برای خلقت هم توشه آه، یعنی هم میفهمونه که آفریده است و آفرینشش هم حکمتی داشته چنین جعللکُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا این اله متعلقه به جهل است چرا چنین کرده خدا لَتَسْكُنُوا فِيهِ تا شما آرامش یا بیت درشد و نهار مبسرا و نهارت به جایه بگید ال ليلة. شد؟ و نهار مبصران. یعنی و جا ال لکم نهار. قرار داده برای شما نهار بود. مبصران، مبصران مبسرا یعنی ایجاد بصیرت کنه ببینید ما جعلنا لكم انهارا بگید مبصرا یعنی لیز کنو لیل و یبصروفه نهار معایشا کو تا در شب آرامش پیدا کنید در روزم معایشو ارزاق خودتون رو ببینید زندگیتون رو بتونید تنظیم کن مبسرن خب خدایی که چنین شرایطی رو برای شما ایجاد کرده خداست اونی که شما بگید چوب و تختیر اسمشو گذاشتید خدا این نه فیزالکه لآیات لقوم یسمعون این نه فیزالک فیزالکه نیچی؟ در این شب و روز برمیگرده به دوتاش در این خلقت و آسمان و زمین شب و روز آه؟ در این نوع آفرینش بیزالک لآیاتن لا ان نوع لاما آورده تحکیل میگه بابا به پیر به پیغمبر در این آیه و معجزه الهی آیاتیست یعنی شما فقط همین رو, رو نگاه کنید آیات و نشانه هایست اما آیات و نشانه ها لغومن برای قومی که صفت آیاته یسمعون بشنون آه. یعنی حرف ما تو گوششون بره دستشون تو گوششون نباشه یسمعون یعنی بشنون همین بشنون تحریک میشن بشنون عقلشون رو به کار میندازه اینها متاسفانه نمیشنون لهم آزانون لا یسمعون بهوا گوش دارن هم مثل گوش اولاقه. نمی‌شد شما قلاق گوش داره گوش درازی هم داره ولی وقتی یکی صدا کنه حرف بزنه استدلال کنه چیزی بگه اون فقط یه هم همهمه‌ای بگید مشتا چیزی لقوم یسمعون پس چرا خداوند هو الذی جعل ها چرا این قرار رو کرد چون ان نفیزاله که آیات لمن نشد یا فقط بشنوه خیلی ها یعنی بشنوه کفایت میکنه همین هوشیار باشد که بگو این کلام به گوشش فرو بعد میفرماید قالو برمیگرده به مشتکی قالو اتخذ الله ولدن الله قائل ولدن مفرد میگن خدا فرزندی گزیده یعنی برای خدا فرزند قرار می دهند. اتخذ الله این کلام اتخذ الله و ولدن کلام خبری است. احتمال صدق داره احتمال بگید. که از داره کدومشه؟ میگیم خب این گفتشون چطوره؟ میگه صبحانهو خوبالغنیو لهو مافه سماواته و مافه لرز. اینجا مافه سماواته. میفرماید صبحانهو این او تنزیه هست برای کلام زشت اونها کلام قلط اونها منذره هست خدا از این که بگیم دارایه بگو فرزنده یعنی علیازو بلله صبحانهو یعنی این کلام غلط هست تنزیه که میکنه یعنی چی یعنی تنزیه میکنه از داشتن ولد دیگه یعنی این کلام درست نیست این او استیناف بیانیه دیگه میگیم گفتند حالا چیه؟ میگه علاوه از دروغ محض است. چرا؟ چرا دروغه؟ این سبحانه او؟ درست شده نه؟ یعنی سب صبح به ها سبحانن، صبح سب به ها سب به لهو تسبیهن. خدا منزه هست. یعنی کلام دروغه. چرا دروغه؟ خوّال کنیجی، خوّال القنی علّقانی، علفلام داره خبره. مفید هستره. چون او فقط بیناز است بی نیاز, نیاز قنیه مطلق اوست یعنی بقیه همه بگید نیازمند یعنی همه آنچه غیر اوست مظهر نیاز است انتمال فقراء الالله الله هول قنیه یعنی او غنی است بقیه فقیرند فقر دارند نیاز دارند او غنیست خب اگر او فقط غنیست و بقیه فقیرند آیا غنی میاد به فقیر متصل میشه؟ مشخص شده نه؟ سبحانهو یعنی دروغ است علیازو بله چرا دروغ است؟ چون خدا بگیر غنی مطلق است و دیگران فقیره مطلق چه می شود که غنی بیاید از فقیر بگید کمک بخواد غنی چه نیازی به فقیر داره غنی به ذات چه نیازی به فقیره بگو به ذات داره میگه چطور خدا غنی به ذاته میگه چون لهو ما سماوات و ما في استیناف بیانی لهو یعنی چی فقط مال خداست ماف سماوات و مافله هست یعنی کل هستی مال خداست در ملک خداست در قبضه خداست نشد یا شد زیرا همه اون چه که در هستیست مال خداست ماف سماوات و مافل است. نشد ماف و ما. اینجا دیگه باید کل هستی رو میگفتو دیگه نیازی نیست اون بالا ما عرض کردیم که ما ما رو جدا کردیم اوغلاش رو گفت, گفت اوغلاش همه مال خدا حالا چه برسه غیر اوغلاش پس منبین شما دارید دنباله بگو حقیقت شریک نیستید شریک دار. اینجا داره میگه خدا غنیه فقط غنی در هستی خداست اونی که قناع ذاتی دارد خداست بقیه همه فقیرن هم. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای اینکه که هر چه که در آسمان و زمین است هر آن چه که در است، همه مال خداست پس اونا فقیرند آفریده خدا درست شد؟ در وجود خودشون محتاج به خالقند خدا آفرید این اندکم من سلطانن به هاسا ببینین قالو وابش وابش چیه؟ نه نه قالو قایبه درست شد یا نه این یت اونا چیه قایبه خب اما اینجا داره میگه چی این اندکم خطاب میکنه التفاته یعنی تا اینجا با اونها بحث کرد حالا داره بهشون میگه چی این اندکم من سلطانن به هازا اون من من سلطان من زاید است یعنی سلطانون اندکم خبر مقدمه سلطانون مبتدای معخری نشد؟ میگه زیرا چرا گفتیم شما تبعیت از گمان میکنید؟ چرا گفتیم که همه این چیزهایی که میگید یخ چرا گفتیم که شماها دارید مسیر اشتباه میرید چون بر این اعتقادات شما هیچ حجتی وجود ند. سلطان یعنی حجت این اندکم سلطانون بگید به هازا به هازا متعلق است به سلطان به هازا متعلق است به بگید هازا یعنی هازن قول خازل اعتقاد شو یعنی شما هیچ حجتی بگید ندارید هیچ استدلالی ندارید تنها یه چیز داشتن چی چی داشتن ای گفتید یخرسون اون یخرسون هم که چیز روزی همینطوری یه چیزی حدس زدن شما سلطان ندارید سلطان یعنی حجت یعنی اقامه دلیل یعنی روایت عقلی نقلی استقرایی هیچ چیزی بتونید ادعا کنید هیچی ندارید ان اندکم التفاتش خیلی قشنگه ها یه دفعه خطاب به اینها کرده میگه چی چی تو مشتتونه هیچی ندارید من سلطانم ان بهواز بعد عتقون علی الله ما لا خوب کسی که حجت نداره حرف میزنه میشه نفهم ها این اتقولون اتقولون داره چکار میکنه؟ ها داره توبیخ میکنه اینها رو آیا اینها قول بدون علم میگفتن یا نمیگفتند؟ میگفتن دیگه همزه میشه استفهام انکار توبیخی همزه همزه میشه استفهام انکار توبیخی چون اتغولون اللهه اگر اقولون الله یعنی شما دارید میبندید به خدا مالا تعلمون چیزی رو که شما بگید اعتقادی نه نمیدونید از سر نفهمی دارید حرف زدید در خرسون بود دیگه چون دلیل ندارن نفهم حسابشون کرده این خیلی مهمه ها یعنی جعلهم غیر عالمین به خاطر نفی حجت یعنی اگر کسی استدلالی نداش مطلبی پشت بگو اون چیزی که داره میگه نبود اینو باید بهش گفت نفهم عالم نیست عالمونیه که حجت دارد، یقین دارد، دارد. داره یقین داره استدلال داره این اتقولون داره اونارو کار میکنه توبیخ میکنه میگه دارید حرفایی میزنید که مالا تعلمون چیزایی میگید که خودتون بگیر نمیدونید علمی بهش نه. یعنی مالا تعلمون ها <تصفح> از سر نفهمی داری درفت میزنی این استفهام گفتم استفهام چیه؟ انکار توبیخ <تصفح> چون مخواست توبیخشون کنه <تصفح> سیغر و مخاطب کرده آه؟ چون توبیخو باید به کی بکنید به مخاطب مقایب رو که توبیخ نمیشه کرد نه اینکه التفات به خاطر اینه که مخواسته هم کلامشون بشه التفات این که گفت این فلان فلان شده شما که هیچ دلیلی برای کارتون ندارید پس فناوری خفشید دارید بگیر هفهای مفتی را از سر نفهمی میزنید توبیخ شد پس اگر این التفات شد التفات به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه که بتونه توبیخشون قل، ان الذين يفترون على الله الكذبه لا يفلهون. حالا نگاه کن توبیخشون کرد یا نه چون توبیخشون کرد اثر به قول خودمون اعتبار افتادن حالا چون افتادن دیگه مورد خطاب نیستن میگه چی قول پیغمبر به اینا بگو ان یفترون الله الکزه و لایفلهون آه نگفته انتوم لا تفلهون برای اینکه فعلشون رو بگه که به دلیل این فعلتون اگه میگم انتوم لا تفلهون معلوم نمیشد که به چه دلیل اینا لا تفلهون نورد شو باید برمیگشتیم استنباس میکردیم ولی الان میگه الازین یفترون الله الکزه یفترون یعنی یقولون افترا دیگه الکذب یعنی این دروغ الفلام داره کدوم دروغه اینکه اینا خدان اینا شریک خدان اینا دروغشون این بود که اینا شریکه خدان نگه کسانی که این شریک بودن رو برای خدا افترا میکنن لا یوفلوون رزگار نخواهند شد اجازه بدید بله دیگه فردان داشته بله شریک دیگه، شریک داشتن برا خدا فرزند داشتن شریک داشتن این چیزهایی که شما دارید میگید اتخذ الله و ولدن آه؟ اینها کسانی که این افترار رو به خدا ببندند لا حالا چرا نگفتش که قل انکم لا توفلهون چون اگر هر چیز دیگری میابرد بگیر علت فهمیده نمی شود تو بلاغت خوندیم که یکی از آوردن موارد محصول اینه که میخواد علت رو بفهمونه لایفلهون علتش چیه؟ افترا ها؟ و دیگه خطابم به اینا نکرد کلی گفت انقدر اینا کارشون زشته گفت کسانی که بگی افتراه بر خدا اونم این افتراه فرزند داشتن شریک داشتن اینا رو به خدا ببندن لایفله اینا را از کار نمیشن درست شد؟ میگیم خب این افتراع چه میکنه برای اینها؟ این افتراع چه میکنه؟ میگه مطاون مطاون یعنی چی؟ خبر مبتدا محضوبه یعنی افتراع هم مطاون مطا یعنی چی؟ اینجا نکره اومده امروز خوندیم توی بحث بلاغت نکره برای تقلیل یعنی افتراء و مطال. یعنی چی, چی؟ یعنی یه بهره کم منفعتون یسیرتون پس اگر دیدید توی دونه تفسیر نوشته منفعتون یسیرتون یعنی حاضهی نکرتون تدل قلل خواهد اینو بدونیم دیگه میگه ای افتراء اینهای منفعت قلیلی تو دنیا مراشون بگید داره تو دنیا سر خودشون رو باهاشتی کردن که هم کردن منفعتون قلیله متاون فد دنیا ولی خلاصه این دنیا تموم میشه یا نمیشه آه. یه سال دو سال ده سال اصلا ست سال سمم ثم الینا مرژه اما پل خر بگیرید ما اونجا بایست دیم یکیه کشون سمه ایلینا مرجع مستر میمیه یعنی روجوع اوهان ایلینا هم مقدم شده مکیده هست ولی تموم نمیشه توی این دنیا خودشون رو سرگرم کردن متعای قلیلی دارن آب و نونی میخورند و مشغولن اما سمه ایلینا مرجع اوهان اما فقط به سوی ما باید بیانا جای دیگه نمیرن ما هستیم خب عدم آمدن چگونه شون میکنیم؟ سوم من نزیر خوهم علا اذابش شدیده به مکان او. سوم من نزیر خوهم میچشونیم بهشون. چرا؟ حس حسیش کردم ولی اذاب چشیدنی نیست با رو به زایر یعنی نه همه میکنیم بهشون. اما حسیش کرد یعنی می چشونیم استعار مسرحه تبعیب اینا در فهم نوزیق هم العذاب شدید العذاب یعنی عذاب الله اون هم شدید عذاب آخرتی اون, هم... اون عذاب معهود اون عذاب جهنم عذاب الهی عذاب آخرتی عذاب احر اون عذاب ویژه رو که شدیدم هست نزیق هم. میچه شونیم به اینا. به خاطر چی؟ بگید به ما کانو یک فرون. کانو یک فرون استم... چیه؟ بگید مازی استعمالیه. به خاطر کفری که در این مدت ورزیده. عذاب جاودان و عذاب دایمی مون به خاطر کفرشون هست. عذاب قیامت جاودانه دیگه عذاب کفر جاودانه علا عذاب که میگه یعنی اون عذاب عذاب کافر اون هم شدید غیر از جاودانه چیز دیگری بله نه. مگه میشه مگه میشه کسی باشد مشرک باشد از دنیا برود طبق آیاتی که دارد طی جهنم از تو خالد هیچ رای فراری هم اینا هم داره میگه؟ سمه نوزی قهوم العزاب یه یعنی عذاب شدید المعبد درست شد؟ عذاب شدیدی که دائمی است یه چکم درده دا هم به آیات دیگر مراجعه کنیم اینو میفهمیم چون میشه عذاب آخرتی عذاب آخرتی برای مشرک یعنی اون عذاب الهی اون عذاب الهی برای مشرک به ماکانو یک برون به جز عزاب عبدی. نرساله شبانه خب اینم مال این خیلی قشنگ بودا یعنی مرحله به مرحله با اینها استدلال حالا میاد سر یک قصه مشکین تمام شد وطلو آه؟ ببینید الان ما میتونیم بگیم وطل و علیهم اطفس به جای قل یعنی میگه قل ان الذين یفترون علی الله الکذبه ولا یفلحون متاؤن یعنی افتراع و هم متاؤن درست شد دنیا، فه الدنیا فه الدنیا بعضی هم بعضا موردن مثل علام و کلام معنای تمتی درست شو؟ یعنی افتراعی که اینا زدن و ما پاسخشو ندادیم یه نوع بهرمند ساختن ایناس از متاؤ دنیا یعنی فه دنیا متعلق باشه به متاؤن به معنای تمتی ولی مطاق اگر به معنای کالا باشه به معنای چیزی باشه که ازش بحره میبرن آه؟ دیگه فد دنیا میشه صفتش صبح مهل اینا هم میتونیم وطلو را عطف کنیم به جای اون ولی با هم پیوند بگید ندارن اون قصه تمام شد بحثه بگید مشتکین بود و استدلال و بحث با اونها اما وطلو علیهم، ها علیهم یعنی بر دیگران فقط بر اینها نیست ولی اگر اینو عطف کردیم به اونا علیهم هم باید بشه چی؟ مشرکه مطلو علیهم نبع انوهل. نبع یعنی خبر مهم بر وزن خبره اما نبع خبری میگن که شعن داره مهمه آه؟ احمیت سائلون عن نبع لذیب یعنی از اون خبر مهم اینجا نبع نوه یعنی چی؟ قصه نوه داستان نوح خبر مهم که به نوح بر گرده میگه تلاوت کن بر اونها نبع نوه رو از از با تعلق است به نبع نبع نوه کهی بوده؟ قصه کی بوده؟ از اون موقع شما مسافر موقعی مثلاً, مثلا با قول علیهم چی به اینا نه ماش مقدسه کتاب مقدسه دیگه قول یعنی پیام بهشون برسون وقتلو یعنی داستان براشون شرح کن تلاوت کن یعنی آیات رو براشون بخون با این اینجا سام بحث پیام رساندن نیست مطلو علیهم یعنی این قصه رو براشون تلاوت کن شرح بده نبه انوه از متعلقه به نبه بعضا هم گفتن از بدل اشتمال است از نبه حالا کاری نداریم فعلا به اون مطلب کدوم از متعلقه به نبه بعضا گفتن بدل اشتمال بدل اشتمال از قال لقومه نبر نوح, نوح کی قصه نوح کی قصه نوح رو تلاوت کن کی این قال لقومهی مزافون علیه از دیگه قال لقومه لقومه متعلقه به قاله است موقعی که نوح به قومش گفت یا قومه یا حرف تا قومه یعنی قومی اون کسره دارایت بر یا محضوف میکنه منادای مضاف ای یاران من ای اقوام من ای قوم من سورد شد ای یا قومه که گفته در واقع مثل این که یکی میگه ای عزیز من ای فرزند من این در واقع این ندا برای این هستش که او بهش نگاه کنه توجه کنه ولی این نوع ندا برای زمین سازی پذیرش همچیه هست آه؟ شما نمیگید ای حسن آقا اینطوری بگید این بگید بگی حسن آقا فقط صداش کردید ولی وقتی بهش میگی ای پسر من ای عزیزم در این حالی که صداش کردی به تو توجه کنه در این حال با عزیزم جانم زمینه رو برای بگو ها پذیرش بعد آماده کردی میگه یا بنیه نمیگه یا یوسف یا بنیه، لا تقصص رؤیا که علا اخبتک گرفتید یا نه توش شفقت دلسوزی خابیده ندم متوجه میشید من چی میگم یعنی اینطوریه میگه یا قومه انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله مقام یعنی جایگاه یعنی جایگاهی که من توش هستم داریم و اما من خوافم مقام ربهی ها میگه این جایگاهی که من توش هستم و تذکیری خب این جایگاه من جایگاه چیه پیغمبری حشتا و تذکیری به آیات الله یعنی و تذکیری ایاکن به آیات الله اگر این جایگاهی که من توشم که است و این تذکر دادن من شما رو متذکر کردن من شما رو به آیات الهی انکان که بره علیکم آه؟ اگر این بر شما سخت تعملش بگیر نمیتونی بکنین اگر جایگاه من و کاری که من میکنم میفهمید یا نه؟ کاری که من میکنم و شما رو متذکر به آیات الهی میکنم انکان که بره علیکم توی افعال ناقصه اگر خبرشون فعل ماضی بشه قد میگیرن جز کانه که میتونه قدش نباشد یا بعضا گفتن در تقدیر باشد مشخص شده نه؟ یعنی yeah. این بوده انکان قد کبر علیکم نشد یا شد یعنی بقیه افعال ناقصه خبرشون اگه فعل مازیبیات بیاد حتما قد داره نداشته باشه میشه شاز ولی در مورد کانه بگید جایز است چون رئیس عدوات ناقص است افعال ناقص رئیس خصوصیاتی داره چندین خصوصی یک شم همینه درست شد؟ حالا اینکه قدر قد ندارد خبر آیا بگو قد ندارد آیا باید تقدیر بگیریم یا نمیخواد؟ دو قوله دو قوله برنز شده نه؟ بعضی میگن در تقدیر است این هم مثل اونها در تقدیره بیشتر نهات همینه میگن بعضی میگن نه اصلا نمیخواد چون رئیس. انکان کبر علیکم مقامی مقامی بگید فائل کبر است و تذکیریت به جای اون اینجا کبوره یعنی چی؟ یعنی اگر بزرگ است کبیر است بر شما جایگاه من و تذکرات من اگر کبیر است بر شما یعنی چی؟ یعنی سخت تعمل شد نمیکنی زیروبار نمیدید درسته؟ کانه اسمش چیه اینجا؟ کبوره شد خبرش اسمش که نه بایات الله که مطلب تذکیریه زمیر شعن مقدر اسمشه زمین شعن مستطر توش یعنی انکان شعنها کبر بره علیکم مقامی این کانه و اون زمیر داخلش و اینا همون تحکیده یعنی بابا اگر این جایگاه و کار من بر شما سخت است آه میشه می چی؟ اسمش جمله که علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله میشه الله توکل تو الله توکل ای الله توقف تو جواب بگید شرط جواب شرط. انکانه... على الله خبر مقدم توکلتو تو بگید على الله جارو مجبور متعلق به توقف تو مقدم شده مفید چیه بگید. عصر یعنی پس من به خدا توکل میکنم این فعل الله تو فعل الله توکلت تو. این که جزای شرط شده فا گرفته این که فا نمیخاسته ها چون فعل ماضیه توکل تو جواب شاید فاهم مخواسته فیلم ماضی مثبت بیاد فاهم ظاهرش اینه که این رو هم باید چی بگیم؟ فعلالله فد ترک کرده مثل امکان، قمی سهون قده من دوباره آف فع فسد اول ها من قبله بگید فساد اول حالا این خانه رو من گفتم چی بوده این خانه قمی سوح قد گفتم باز باشه قرض بگید قد ها خبر خانه است دیگه اونجا فسد قد که جزای شرط شده و چی می‌شه فقط صدقه ها فقط صدفت نشده شد یکی اکیبر افتاده ایکی از اون ولی تعادل در کلام رو بگید شما میبینی میگه امکان قمیز و قدم این اگر نباس او از روبرو رو از جلو پار شده فسده فقط این خانوم راست میگه او باهاش درگیر شده این خانم از خودش تبار کرد روش شده نه و قبوله بازه. این فصدقت بوده فقط صدقه چون نمیتونه بیرازی باشه فهر ماضی مثبت جزای شهر بشه فا نمیگیرد مگر قدرتر اینجا نگاه کنید بوده انکان قد کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله و علالله قد الله هم مقدم شد این جزای شرطه برود شد؟ جزای شرطه حالا این جزای شرط باید مسبب از فعل شرط باشه دیگه مسبب از چی باشه؟ توکل این مسبب از اینه که اونها جایگاهشو تحمل نمیکنن. این جای جواب نشسته یعنی ان کبر علیکم مقامی و تذکری به آیات الله فلا بئس علیه اگر منو نمیتونید تحمل کنید به جهنم هیچ مشکلی نیست متوجه شدید نه فلا خوف علیه فکر نکنید من جا میزنم فکر نکنید من بگو میکشم کنار بله خب باشه الان در ظاهر جزای شرطه ببین جایگاه لفظیش جزای شرطه پس قد میخواد درست شد اما ما اون قبلی که افتاده رو دیگه نمیگیم که در تقدیر میگیم چی میگیم اگر بخواهی پیوند بین این دوتا رو ببینی پس بنابر این بگو باید شما چکار بکنید باید بگید این نشسته جای جواب جای جواب نشسته الان نگاه کن این آیه اجازه که فرض کنید بگیم این آیه رو ببینید ان یسر اخون، را من قبل این آیه چیه ذویو ثمن دادا شا گفتن ان یسر یسره یعنی ان یس ب نه به معنای اینکه هر چه بکنه در آینده چرا این برای محتمل وقوع آینده است ولی فعل به معنای وقوع فعل نیست این تو سر میگن فعل 90 درصد برای وقوع 10 درصد برای یکیش برای ثبوته یعنی ان رق یعنی اعیست بود ثروتو یعنی چی کو که مثلا شعبه دیدیم مشتری بار یه چیزی در ولی اگه ثابت شو ثروت کرده معنیشی کردید واقعا ازش پرسیدون و این معلوم جو بره دوسی کرد شد. اگر ثابت شو سرقت کرده جوابشی نه فقط سر امر خون این ثابت شدن سرقت او سبب میشه برای اینکه یه داداشی داشته 20 سال خوش کرده که نمیشه سبب 20 سال بعد است مصعف بیاره متوجهینم این جزای شرط الان در ظاهر جزای شرط فعل ماضی باغت خوان گرفته ولی اصل داستان چی بوده اینه این یسر فلا بحثه نگیه فلا نتحجبه اگر ثابت شد دوزید بایده خود چون شد جمع شده اگر ثابت شد دوزید کرده جهنم. چه مشکلی برای ماست؟ جای تحجب نداره ما هسته تحجب هم نمی کنیم فلا خوفه نگیه فلا بحثه نگیه فلا نتحجبه چرا؟ چون یه داداش هم داشت دوزگید جنتیکیه دوزیدوی این در واقع سبب هست برای ما جوابه بگید محضور که فلا فعصه علینا فلا نتحجبه چرا؟ چون دادشت هم دوز گرفته چی شد نه؟ این هم از نظر نفذی تو کتاب نفذی هم اینو مثال بزنم برای ما ماضی واقع اومده جزای شهد شده پاک ولی این واقعا جواب نیست اینجا کلام داره ایجازه جواب حقیقی چی شده؟ افتاده اینجا بگید؟ میگه اگه شما نمیتونید منو تحمل کنید فکر کردید من خالی میکنم میرم فکری عقب نشینی میکنم نه فلا بعس علیه فلا خوف علیه ها چرا چون من خدا دارم فعل الله توکلت این فامشه پای نتیجه فای فرج میون درست شو بنابرین هر غلطی دلتون میخواد بکنید بکنید فعجمه اجمهوا یعنی عمی چی شد یا نه گفته اگر شما نمیتونید منو تحمل کنید جایگاه من و بگو شرایط من برای شما قابل تحمل نیست این رسالتی که انجام میدم من جا نمیزنم من عقب نشینی نمیکنم خوفی هم بر من نیست اصلا اشکالی هم وارد نیست چرا شما من خدا دارم آه چرا اشکالی بر من نیست؟ چرا من عقب نشینی نمی کنم؟ چون خدا دارم فعلالله تبکل دو بعد بنابراین شما هر کار دلتون میخواد بکنید فعجم او عمر و شرکا کن شد نه؟ بنابراین عجم او ببینید این دو تا مطلبه عجم او یعنی اقصدو یعنی ازمو عزم کنید یه اجمعو یعنی اجماع کنید اجماع در مورد مطالب میشه در مورد امر میشه ها حرفتون رو یکی کنید هر غلطی دلتون میخواد بکنید بگید بکنید گلبزی دیانه اجماع در مورد امر بگو میشه اجمعو امرا کن عمره و شرط کن میتونه عظم بشه به جای بگو امر چون امر اجماع برش واقع میشه اما شرکا اجماع برشون واقع نمیشه. نمیشه نمیشه اجماع کنید بر شرکایتون معنا نداره کارتون رو بگو انجام بدید و شرکایتون انجام بدین، نمیشه که گرفتی چی میگیم یا یعنی؟ نه لذا بعضی این واب رو وابه مفعول و مه گرفتن میگن دنها جایی که مفعول و مه تو قرآن هست همینه مفعول مع مه خیلی کمه یعنی اجمه او امرکم و بگید شرکاءکم یعنی مع شرکاءکم برید با وقتاتون بشینید با شریکانتون بشینید هر کاری رو که میتونید بکنید بگید و شرکاءکم بشه مفعولون بگید من یعنی اجمه او امرکم مع بگید شرکاءکم نشد یا شد شد بعضی گفتن نوابش آتفه است شرکا هم به جای امرکمه ولی به حصف مضاف یعنی اینجوری بوده عجم او امرکم و امر شرکا اکم و حصف مضافه نشد یا شد عجم او امرکم بگو و امر شرکا ایکوم. امر دوم بگر یعنی چیز؟ یعنی موضوع خودتون رو، بحثاتونو بشینید، روش هر چی می‌خواید حرف بزنید، هر غلطی دلتون می‌خواد در مورد خودتون و بوتتون بکنید. چوت اجم او امرکم و امره بگید. شرکای کن بعضی ای این آیه خوندن وج فجم او جمع ارج مع او فجم او. فجم او جمع کنید متوجه یا نه اون که باشه میشه فجم و امرکم و بگید شرکا باز همین ترکیبات توش عجم و امرکم و شرکا پس پیوند آیه رو فهمیدید یا نه گفت فکر نکنید که حالا شما سخت بگیرید نمیدونم جایگاه من و تذکرات من برای شما سخت باشه من جا میزنم نه من خدا دارم. شما برید هر کاری دلتون میخواد بگید، بکنید. سملایکن امر و قم یعنی چی؟ بشینید هر غلطی دلتون میخواد بکنید. سمه. هر چه قدم میخواد بشینید، بشینید این سمه کرده ها لا یکن لا یکن به جای اجمه بود لا یکن امر و علیکم قمتا یعنی مسطورتا قمه یعنی فینهان نهان شو سو ثم لا یکن یعنی اون چیزی که میخواید انجام بدید فعل لا یکن علیکم قمتن قمتن یعنی مستورتن سپس کارتون رو هم بگید پنهان نکنید هر قلطی دلتون میخواد بگید برید هر توتحهی میخواید بچینید اون فعجمه او برید یعنی برید هر توتحهی میخواید بگید بچینید بعد هم پنهان کاری نکنید هر غلطی میتونید بکنید با انجام بدید خیلی همچین مشهور و مشهور بیایید اصلا جلو رو. یعنی تو جاهروننی به یعنی امرتون مخفی هم نباشه بقول من رو زیر... زیراوی هم نرید همچین رو بازی کنید خیلی قشنگ ها میگه من خدا دارم بهش توکل کردم پس بنابراین هر غلطی میتونید بکنید بگید بکنید زیراوی هم نرید خیلی همچین رو رو بازی کنید بیاییت بینم بخواید چه غلطی بکنید گرفتی چی یا نه؟ سملایکن امرکم، علیکم قمتن بعضی گفتن قمتا به من قصتنه یعنی غم و قصه نباشه یعنی دلسوزی هم نکنید هر کار دلتون میخواد بگید بکنید هر غلطی میتونید بکنید قصه هم نخورید آه کارتون براتون قصه نباشه قمت این هم سمقزو علیه سمغزو سم علیه ولا تنزرونه خیلی قشنگفتا سمغزو سم سمه یعنی چی یعنی هر غلطی دلتون مخواد بکنید بکنید پینهانکاری هم بگید نکنید سمغزو سم علیه بعد هم حلاب کنید من، اگه میتونید منو بکشید قضا علیه یعنی کشتش منو بکشید هر بلایی میتونید سرم بگید ولاتنزرونه یعنی چی انزر یانزر یعنی چی مهلت داد انزرنی الایوم یوم و اسون ولاتنزرونه یعنی مهلت همم هم؟ ندید اگه درستون میرسه بگید هر کاری میتونید برا من بکنید کارتون رو تموم کنید قزایلیه و بعد هم چی بگو مهلت همم هم؟ ندید اگه میتونید انجام در واقع با کمال قدرت جلوی اینها چیه وایستاده. گفته اگه نمیتونید جایگاه منو تحمل کنید به جهنم که نمیتونید. غصه ندارم من من خدا دارم. شما من برید در غلط میتونید بکنید بکنید کاراتتون هر کاری میخواد بکنید بکنید. بعد هم خیلی هم نمیخواد پنهان کاری کنید. بیاید و به جنگ ما محلط هم ندید. لا تنزرو نه. اما فا ان توليتوم فا ما سألتكم من عجرین ان عجریه ایلا على الله و امرتو ان اکون منال مسلم من دارم شما را ناسیهات میکنم فا ان توليتوم روش اگر پذیرفته که هیچ اگر پذیرفته مقامی و تذکیری رو که خب نعمل مطلوب اما اگه نپذیرفتید فامتوللیتوم اگه رو برگردوندید فما سهلتکم من عجر من که از شما مزد نخواستم سهلہ دو مفعولی به معنی طلب کردنه من من زائد است من از شما هیچ اجری نخواستم ها اگر نپذیرفتید من از شما چیزی بگید نخواستم میگن خب یعنی کار بدون مزد میکنی کار بدون مزد میشه کار عبس آقلانه بگید نیست آدم بیاد کاری رو بکنه بی مزد و آقلانه نیست میگه نه این عجریه الا علالله زیرا اجر منو شما نمیتونید بدید اجر من بگید بر خداست الله حصر کرده خودش خودشو بر عهده خدا نه بر عهده دیگران اطور شده نه مزد دادن به اون اونصر به خداشون نمیتونید مزد بدید. شده نه میگه پس بنابرین چی؟ اگر شما نپذیرفتید من از شما چیزی نخواستم. مهم نیست. من مگر از شما چیزی خواسته بودم که اگر شما نخواستید من zarar کرده باشم؟ نه. من, من کارمو انجام دادم، اونیم که قراره به من مزد بده بگید. فما سهل تو کن به درست شد؟ یه موقع از شما برای یک کسی کاری انجام میدید؟ ها؟ اون نمیبذیره مزد شما از بین بگید. میره نه من برای شما کار نکردم. که حالا شما نفذی رفتید من کنم شما نفذی رفتید خودتون زرر میکنید من موزدم میگیرم این اجریه الا الله. و عمر تو هنکونم من المسلمین زیرا من معمورم مسلمان باشم. من مأمورم تسلیم خدا باشم. عمر تو انعکونه یعنی به انعکونه حالا کی امر او؟ چرا فعل مجهول آورده به خاطر شهرتش خب معلومه خدا هم گرده امر کرده دیگه عمر تو انعکونه به خاطر شهرتش مشخصه گفته اون خدایی که نامش رو نمیبرم ها اون خدایی که شما هم میشناسیدش اون منو امر کرده که مسلمان باشه خب چنین گفت؟ نو چی گفت به اینا؟ گفت ببین من خیلی این انکان کبر علیک و مقامی و تذکیری ازش چی فهمیده میشه؟ ازش فهمیده میشه که نو خیلی به اینا به گفت فشار آورده خیلی تذکر داده اما بی انصاف ها زیر بار نمی رفتن این اینو نشون میده دیگه لذا آخرش هم گفتش من دست دستپردار نیستم من کارو خودمون میکنم مزدم هم از کسی دیگه میگیرم زیرا من معمورم که تصنیم خدا باشم بعد فکزبو ف یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه که معتلش بکنن کزبو رو تکزیبش کردن خب وقتی تکزیب کردن چه شد؟ فنجیناه و من معهوف الفلک الفول که الفلام داره، یعنی اون کشتیه اینجا فول که یعنی یک کشتی اون هم الفلامش الفلام عهده یعنی همون کشتی که نوح ساخت درست شو؟ لذا فن از جیناهو اینجا دیگه ما سریع وقتی اتمام حجت کرد فن از و من از جای هو. معهو یعنی همراه نوح نوح و کسانی که با او بودن رو نجات دادیم آه و من معهو فلفلک این فلفلک متعلق است به اون چیزی که معهو بهش متعلق نوح رو نجات دادیم و کسانی که با او بودند در آن کشتیم آه و جعلناهم هم خلایفه جمع خلیفه است و اونها رو کردیم جانشینان آه یعنی اونا شدن بازماندگان باقی ماندگان خلاف یعنی یه دره بین بردیم اونا جاشون نشد و جالا هم هم به کی میخوره نوح و من معه اینا رو قرار دادیم خلافه و اغرقنا و اغرقنا لذینک از و قرق کردیم تمام اون کسانی رو که کذبو به آیاتنا همه رو بگو از دمه تیغ گذروندیم بعد میگه فنزور فنزور خطاب به پیامبره ولی بگید به هر کسی هم که این آیه را بخواند بگو خطاب است همه این قصه ای که نقل کردیم مال این تیکه بوده نمیخواستیم براتون داستان بگیم درسته از مجموعه داستانی که گفتیم هم بهره بردید که توکل چه سرنوشتی داره باادت آدم در راه خدا پایدار باشه مزدش از خدا بخواد حرفش رو بگو بزنه از چیزی نترسه همه اینا رو فهمیدیم ولی اصل اون کار اینه فنزر کیفه کان عاقبت این فنزر فعل امره از افعال قلوبه یعنی عبرت بگیر بفهم نه به معنای اینکه از افعال قلوبه لذا با این کیفاکانه تعلیق شده عبرت بگیر بفهم ها کیفاکانه عاقبت المنذرین کیف خبر کان است عاقبت المنذرین بگید منذر یعنی اونایی که توست بگید انبیا ما انظار میشن اقبت کارشون رو بفهم اگر انذارشون کردیم و بگو پذیرفتن میشن من او ها؟ گرفتید یا نه اگر انذار کردیم و پذیرفتن میشن من او بعد پس فاونی فنت جینا و من مع. اگر انذار کردیم و نه پذیرفتن میشنن چیه اغغلا لظ درست شد؟ مننظررین همه رو انذار کردن. اقبت امر رو ببین. خوبشون میشن نجیناه و من معه بد هاشون میشن اغغن لزینه درست شده نه. فنظور این ففا نکیجه است. این قصه رو گفتیم پس بنابراین این خوب دقت کن ببین آاقبت امر بگید این فنزور آخر خیلی عجیبه‌ها یعنی تعظیم عجیبی تو این آیه هست و تهدید خیلی عظیمی تو این آیه هست نسبت به اونهایی که پیامبر ما رو تکذیب میکنن چون گفت وطل علیه هم دیگه بخون بر اینها این فنزور ها تهدید عظیمی توشه نسبت به اونهایی که پیامبر ما رو بگید تاکسی بونه. و آیه به